کتاب آفکینش اثر نیما بخش اول سخنی با شما به نام آزادی یگانه‌ی منجی جانداران بر خود وظیفه میدانم تا در سرآغاز هایم چنین نگاشته‌ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست واخبر سازم نیما شahsavari دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند.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 این جانداران والا ایستادگی کرد. پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می دانید که بی شک بی مدد از این نگاشته نیست هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سوجویی و بر این حافشارید، بی بهره از پشتار و قتل عام درختان می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از زید من و دیگر آزاد اندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه جانداران متن کتاب پیدایش به نام حرف و گفتار یز آزادی به نام یاغی و طغیان و فریادی که انسان جان به قربان اشتران راهی و فرجام جهان در قلب آزادی به نام شور و در وصف شجاعت ها دلاور بودن و آن قطره در دلها به نام امید و بر دل آن هدف افرا و تا جان باشد این جان در دل این را به نام آزادی و جام جهان آزاد زهر هر و هر بندی و انسان شاه به نام جان شیرین تو حیوان را هدف آزادیت رحف تو مشکل ها جهان دور از چنین قتل تو حیوان ماه و گوبر ساختن قرم تو را بر جا به نام همدل و همراه و هم رزمان همه خوبان سلح شوران در فردا همه دنیای را اینسان به تغییر همه دنیا همه در راه آزادی و نابودی آن تن همه یک دل به کنکاش جهان آزاد و با هم یک دل و فریاد این سنده بگو در راه این اهداف بس والا پر از شور و شجاعت دل به دل در راه پر از امید و با توقیانگری این راد بگو جام جهان با عزم ما آزاد هدف از گفتن این شعر گو پس چیست چرا اینسان به نظم آورده بهرکیست؟ بگو گفتم چنین ای در شعر و اینسان من سرودم از برای مه بگو گفتم سرودم ساختم این خانه را این چنین وهم و خیال و این چنین افسانه را تا تو بیدار و به تغیان خودت آگه شوید بردلت شور و بر این آزادگی ها ره شوی تا خودت تنها نبینی و بدانی این جهان از سراغازش همه تغیان و شور است و فقان. این جهان و آن جهان را بیشتر از آنچه هست تو نبینی خوف و این انسانیت آگه شوی بهران گفتم که دیگر هیچ ترسی در جهان از خدا خالق نباشد از دل شیطان و جان این چنین گفتم من و بیدار بادائی رفیق از همه خواب و همه وهم و همه دنیا حقیق بار دیگر این سرودم تا که حشار آدمان بر ها و بر ظلمت بران الله خان این همه وهم استولی کند در دلش صدها مثال یک به یک اسباب بیداری انسان ها کما بار دیگر می سرایم این چنین افسانه را تا جهان آزاد از ظلم خدا در هر رها بار دیگر با من و همراه من این را بخوان جام جم آزاد از اظم من و تو ما کسان جام و دنیا و بگو این جام جمع از هیچ بود، هیچ در قلبش نبود و این جهان از هیچ بود. یک خدا در قلب آن ساکن بگو از هیچ بود، هیچ در دنیا و این هیچ از پی آن هیچ بود. این تن تنها و این رحم و رحیم و مهربان هیچ از دنیا ندارد، او خودش از هیچ بود. تک بگو تنها بگو او در جهان خیش بود تن بگو بیمعنی و بود و نبودش هیچ بود او به تنهایی گذر می کرد این جام جهان وقت و این بگذشتنش از او برایش هیچ بود او به دل دارد صفاتی و صفاتش هیچ بود معنی هر کار و هر کردار او از هیچ بود او نه مولود کسی و والد آن هیچ بود صد هزاران نقمه از هیچ و برای هیچ بود آن خدای نامیاری بردل و برخیش بود خیش بود و هیچ بود و این جهان از هیچ بود هر زمان تنهایی و تنها ترین تنها خدا او به دنیا بود و این تنها به دنیا خیش بود حال و احوال جهانش خستگی و ماندگی او به جام جنب تنهایی خود درخیش بود روز و شب تنها و این تنهایی تنها خدا خسته و درمانده و بیکس نبود او پادشاه حال دنیای دگر می خواهد او دنیای تار روشن و پرجان کند جام جهان را او به کار مینشیند گوشی و با تمام قدرتش جمع جانداران فرا به سیراب از عتش. او یکی صد ده هزار و این چنین و جام جمع را پرز خلق خیشدن اینسان بدی هر یکی بهر چه آمد بردل و دار جهان او شد اینسان پادشاه و خلق او شد این کسان آن یکی سور است و اسراو و بگو هور و قلام این یکی ازراو و جبریل و بگو از آن کلام هفت و هفتاد و بگو هفتزد بگو هفتاد زار سیل این جاندارگان را او فرشته نام دا. کار اینان چیسمت هست و ستایش بر خدا او به تخت و این جماعت در برابر پادشاه جز چنین خلقی بگو خالق چه می خدا هر نفر بر پای او پالیسی این پادشاه. شاه و دلدار از او اینسان پر از صد ادعا حال شد او خالق و فرمان و پادشاه. جز چنین پریاو و این سطها فرشته از خدا. او به خود خلق فرید. حیوان جان و آن سرا هیچ در امیال او جز در تنها هیچ بود او جهانی ساخت پر صدها هزاران از خدا حال دیگر جام جم پر جان و در تکبیر بود یک صد بر دل میلیون او درگیر بود در دل این آفریدن بهر اینان در نیاز از غم تنهایی و انسان به تنهایی فراز او سه جاندار دیگر در قلب اینان آفرید از غم تنهایی و اینسان به پروازی پری نام یک تن از دل آن ست فرشته از خدا نام شیطان بود و آتش در دلش آتش برا آن یکی اردان و از آن هیچ در دنیای خاند نام اردان از دل عقل و از آن افکار جان گو به آخر هور بود و او جهانی دور بود، نام او مهراز، او قلب و محبت نور بود. این چنین پایان خلقت از خدا از پادشاه، او شده شاه جهان و شاه در شالودرا روزگاری پیشتر او و دل درگیر بود، در دل تنهایی و عضلت جهانش سیر بود. تا که دنیایی دگر سازد جهان از خیش بود او پی آن هیچو در کام جهان خیش بود حال دنیایی و تو خالق شدی بر جان ما او دگر تنها نبود و در برش ستها فرا جام جم سازد جهانی خلق او این دارد او به ار و در دل دنیا هزاری کار بردل دنیا شود او شاه و بر دنیا فرا او هزاران جان و خلق و ها دارد این گذر دارد زمان و این نظام از زیر و دگر جانها به دنیا دارد و درگی آن جهان پیشتر خالق در آن تنها حال دنیایش بر از پور و ملائک این چنین افراد صبح و شام و در دلش هیچ اسپه آن هیچ. او به تخت قدرت و دنیا به دو همکیش. خلق او بی هر اراده در جهان خیش. او چنین آن آفرید و در جهان هیچ. صبح و شام و روس در هم به رو در پیش. او به قدرت پیش در دنیا برایش هیچ. گفتم از جبر و از آن خلقی خلقیش جان باشد. لیکن این قدرت یزدان را بگو راه شهان باشد این همه جانها نه یکسان بی ارادت در قفس باشد او به تکی عقل و دل از جان و از کام نفس باشد ولی کن بیشتر در حسر و در زنجیر سارت بدینسان بیدل سان بی دل و فکر و در این کام کهان باشد خلاصه گفتن از این خلق و خالق آن خدا و یزدان خلق و خالق پر تناقض قلب دنیا و جهان باشد تو با این گفته از من هم سخن راهی که خلقی هست رو آن دیگر به آزادی جهان باشد شهنشاهی شده این خالق یکتا برابر پای او صد قلم و صد احراح شبانگاه و بروز و وقت بی وقتان همه بر پای او سر ساید و یکسان یکی از صبح تا شامش همه تکبیر و دیگر با جهان خیشتن درگیر یکی میگوید از زیبای یزدان یکی بر پای او سر ساید و حیران یکی از صبح تا شامش همه مت هست و دیگر با فریب و هیله در مکر است یکی القاب او را این چنین زرین و از صبح و به شامش میکند تکریم به جمع هوریان در روی او ترسیم و با شهوتگری این قصه را ترسیم و او در کاخ و در قدرت و او والا و او اینسان شود آن شاه و شاهنشاه همه در روی او یکسان به هم تحقیر و با کوچک شدن او می شود تکریم به دنیایی که در آن یک تنی والا و جمع دیگران در راه آن خود خواه. همه با هم برای شادی آن شاه و از خود کوچکی سازد و او را می کبرا همه دنیا اینسان از برای شاه و او اینگونه خلقا آورد اینسان کا بگو تنها بود اینسان دگر او کیست و در تنهایش در پی بگو در چیست و حالا او جهانی دارد و خلقی که می سایند بر پایش شد مردی کتاب آفکینش اثر نیمان شه بخش دوم انسان به تکرار و به و در این تکرار صبح و شام و روزها با هم یکی در کار او به تخت و اوج و این والان شینی ها جمع اینان ای از سیل این تکرار بار دیگر از نو و آغاز این تکرار بر سر و صورت زنند و حجوه ها بسیار خالقی جام جهان داده و زین مست است تر فرشته در برابر قید و در بسته است این چنین بر جان آنان این چنین فرمود بر من و پا و سر سای بر من نمرو من جهانی دادم کس خلق آن مستم در برابر من شما خالق خدا هستم اینکه من از هیچ جان دادم به بیجانان، جانان این که آنان را جهانی دادم آسان اینکه که هر دم بازدم می آید و تردید از من و قدرت من است و از من فردید هرچه در جام جهان باشد همه از آن من من خدایم من شمایم من شم بیدارتن. این جهان دارید و تنها کارتان آری من است. سجده بر پای و بخاری در برابر این تن است. هرچه دارید از من است و از من است و از من است. من همه دنیا و دنیا از من و من از من است. گویید و به سجده دربرابر این خدا. هرچه در دنیا همه لطف من و لطف از من است. این چنین تکرار گشت و این جهان تکرار گشت در نفر در سایش و ساییدن آ سرکار گشت با هم آن ناله ها و یاوه ها و قصه ها با هم آن شاه و شاهی جهان از آن خدا هم سمت و ستایش بر خدا یزدان آ با هم این کرده تکرار است و این تکرار را خستگی دارد خدا از این جام جم پس چین چرا هردگی با لودگی در هم آین خدا بازان یزدان شده غمگین از این تکرار آ سور اسرافیل و بر پایش آن خدا بوریان با هر لوندی در برش ای خالقا ما نمیخواهی و تاب از ما برید از ما خدا برد و پایش غلم سر تا سر به او اصرار کرد. آن ملیجک می خود را که او بیدار کرد. جبرئیل و خوشنوازی ها و گفتار وسیع از خداوندی و شاهی و بزرگی از عظیم. بار دیگر دربرش شخصی او اظهار کرد. چاپلوسی و ستایش بر خداوندار کرد. او بدین دین است و با این چاپلوسی ها خدا روی نتواند بگیرد از دل تکرار ها هرچه بر پایش بگو بوسه زدن و این خدا خسته از تکرار و از اکرار این صد قصه ها او دگر تا به چنین روزی ندارد این خدا بار دیگر فکر او تغییر دنیا از سما تاب دینجا خانده و دانسته از این بندگی، حال آن روی دگرها را ببین در زندگی. در جهان این چنین جمیز حیوان نیز بود، این دگر جانها که بر جانها خودش در درگیر بود. او که بیخواه و بدت خواهی یه از بود، در جهان منزل به او از ظلم این شبگیر بود. او به دنیا آمد و بی آنکه خود خواهد چنین هر که بر دنیا بود او بر همین درگیر بود لیکین جان را بگو انبات را هم بر چنین اینکه که او بیفکر و بر جام جهان درگیر بود هر چه در دنیا کند بیفکر او این را خدا این چنین فردید و در کار خودش درگیر بود باز هم ظلم و ولی کن چن این چنین ها او به هر کاری کند هیچی نفهمد گیر بود. این زمان خوردن است و سردریدن آن خدا هرچه در دنیا کند آری خدا تقصیر بود. باز هم کشتن به گوبار دگر آن ظلم ها این چنین دنیا فرید و بر همین تکریم بود. بردگر میتازد و از بهر آن خلق آمدان این خدا در کار دنیای خودش همگیر گیر بود شهوت و خاموشی راندن به جنسی در خلاف این خدا داند که تدبیر از دل تزویر بود هیچ در کار خودش مختار بوده آریان این خداوندی پر از ظلم و بگو تحقیر بود این چنین می‌بیند و جام فرشته هوریان حال در فکر و بر این جام جهان تقدیر بود یک از آن اردان بگو گو فکر رو بگردار که این خدا بهر چه جهان تدبیر بود چیست این جام جهان بهر چه آمد این پدی این که تکرار مکرر حاصلش هم پیر بود هر که در جام جهان باشد همو هیچ از سوال این همه اسباب بازی خدا تکبیر بود حاصل و فرجام این دنیا چه باشد چیست را اینکه آغازش چنین پایان او درگیر بود آن یکی مهراز و پر پرمهرست و این افسانه ما این جهان هیچی به جز ظلم خدا شبگیر بود بهرچه آورد این حیوان و این خو از کجاست جان هم را می و ناله من دیر بود این چنین با خفت و خاری کشند و خون برآ، این چه ظلمی از برای خالق تزویر بود. شرب شیطان نام او را این چنین خدا آتشی بر جان و دل ذهن همه درگیر بود. بهرچه اینسان خدا تحقیر دارد این سرا او به کوچک بودن ما بر جهان تکبیر بود. این جهان خلق این دونماندن ما آن خدا شادی و تکبیر و تدبیر و همه تزویر بود سر به پایش مرگ هر مغرور و این هزیان چرا بهرچه انسان خداوندی بدو درگیر بود این چنین آنها به فکر و در جهان این خدا این صدا فریاد اول در جهان پیر بود دورتر گفتم که یزدان خسته از تکرارها حال دیگر جان تازه خواهداری این خدا. این خدا که از روز و شبهایش همه یکشان شده است او از این تکرار در کرار خود نالان شده است. فکر و تدبیری بخواهد در چنین روزان خدا این جهان را باید از تغییر و اسبابی براه او جهان دیگری خواهد جهان افسانه ها این چنین تکرار در آن جای دارد ای خدا شور در گوشش همه قلمان و افران و هراک این چنین باید جهانی ساخت از مزدورها اینچنین این چنین گفتا که ازرا او دلش پر ظلم بود شور او کشتن زهر جاندار و از هر قلم بود یک به یک گفتند و هر کس خود را دور داد آن خدا بر تخت و اینان از برای گور زاد آن یکی می میگفت از خلق جهانی که در آن یک به یک رو در به و جان به کشتار جهان آن یکی میگفت آن حمد و سنا را زور کن بیش از آن پیشی که دارد در جهان نور کن این یکی دارد سخن از شوخی و ارشاد بس صد هزار این چنین منجک به باران در قفس او بگوید از ضل شهوت از این راندن حوست بارلا این چنین بگذار در انظار خست او همه حرفان اینان را شنید و فکر کرد در جهان خیشتن دنیا دیگر ذکر کرد حال تنها ازلتی بگرفت و در آن بکر کرد با همه قدرت بر این خلق جدیدش فکر کرد از صداها، از دل رد و از این افسانهها ها، گرگمیش و آتش و خاکستر از باران آه او به خاکی چنگ و از جانش از این اشکال ها، این چنین زایت خدا در کار خود شد کارگاه آمد از سنهایی و بر تخت خود جا می گرف، سوربانان تبل و شیپور از دل آوا می گرف. گفت جما هر که در خاک و ازان کبریاست روز روز خلق این یکتا بگو این ارشیاست از همه جا آمدند و دربرش بر خاک بود او چنین یزدان قهاری و از این بیباک بود لب و خنداد و بگفتا از چنین خلق نیازونسان او آورده بر جام جهان او را فراز. من به قدرت ساختم این خل را انسان ز خاک این نهای خلقت من باشد این زندار پاک او نهای بازی و اسباب من باشد جهان با هم دیگر نباشد هیچ تکرار و خزان او به زین و در کام جهان تنهای زاد سیل او ما را زهر بیکاری ها آزاد با هرچه در فکر شما باشد در او اینسان بدید او نهای خلقت من باشد آن انسان بزید او دگر ما راز خاموشی جهان بیرون کند او مرا در این چنین افسون کند او همه بازی من باشد جهان را دون کند او دگر تنها نزارد بر جهانی چون کند با همان قدرت که در نطفش نهادم من نسان با انسان به صد حیله را مستون کند ما دگر از صبح تا شام و نگاهی بر جهان ما به کردار نسان و او جهان افزون کند اینچنین گفت و ملائک در برابر آن خدا رأی او سجده به پای اینچنین انسان خدا یک به یک آن حور در قامت به خاک و خاکسار این غلامان جملگی بر پای او اینسان به خار نوبت آن صد فرشته مالکان روز غار یک به یک در پای او اینان به خاک و خاکسار شاخ در بالا و بر تخت و نسان بر پیشار پر تفخر بر چنین خلق و بر خاکسار ناگهو دید از ذل این سطف فرشته باکدار آن مغرور بر پا و بروگ شاه خار امر کرد و نه کرد و گفت بر انجام دار. جملگی بر پای من بر پای انسان کارزار شورش و تقیان به پاگشت و چنین آزادگی در جهان آمد پدید و دور انسان بردگی. آنستن بیباک شور و شجاعت با هدف پر غرور و با امید و این چنین گفتار رفت این چه آینی و اینسان چیست این خلق پلید ذره مهر و امید از قلب اینان پر کشید این چنین محتاج و اینسان بر جهانی زور بود این به دنیا آید از ظلمش جهانی کور بود قلب او محتاج و غرق صد نیازی دور بود، او به کشار نفس آید، جهانش گور بود. در کنکاش این ظلم عظیم ای خدا، بهرچه آورده این انسان فانی را خدا. او که از این دیوانگی آی جهان دارد نشان، او به دنیا آید و دنیای را دارد خزان. از قبل عقلی که در او این چنین شب جیر بود جام جم را او به زشتی میبرد درگیر بود تا کجا اینسان پلشی تا کجا این بردگی تا کجا مرگ غرور فریاد در آزادگی این چنین خلقی پدید آورده در انزار دید او حقیر و هر که در دنیای خود تحقیر زید تا کجا خواهی که با کوچک های ما این چنین خود را بزرگ و این چنین خود پادشاه. کتاب آفکینش اثر نیما نیماش بخش سوم رانده شدگان این سخنها را بگفتا و خدای زور بود اولش مهراز و اردان و به شیطان دور بود ناگه از خشمی که یزدان دارد از ایشان پدید جملگی خاموش کرد و پرده از جانش درید صد سخن دارد هزاران ها سخن از خلق آز لیک بر آن جملگی عرضه نماید در فراز ناگه از خشم خدا دنیا تکانی آنچنان لرز بر اندام هور و بر ملائک بر نسان این چنین برداد و بر فریات هایی سر کشید از صدایش این جهان بر جام دیگر پر کشید گفت بر ازرا و بر اسرا و بر هر دیگری مستقاهان و بمزدوری خداوند پلید وای از این جمعی که دارد بر من و بر من قرید پاسخت را میدهم هم با صد عذاب و جندری یک به یک شیطان و اردان و بگو مهراز جان با دو دست بسته بر زندان دیگرها بری این ز خشم ما بگو جبار و قاسم زار هست این خدای مرگ و درد و صد شکنجه کار هست این چنین بردند و در آتش فتاندند جانشان زجه ها آمد خدا راضی و از چردارشان سر بریدند و دوباره سر بی آمد او پدید با دو اله چشم را آورده بیرون آن درید خنجری بر جان آن را بیشتر کارد به جان میکشد زندار بازم میکشد او جانشان آب چرکاب و مزاب و تشنگی های به جان میکشد او میبرد سرها به تیقی کندران مسله کرده جان او را می درد این ظالمان با شقاوت میکند اندام او را بردهان هم دریایی از خون و آن غرق کرد کشت و جان را درید و بار دیگر عرض کرد قصه قتل و چنین دار جنایت طولی است این خدا در طول این باصد شقاوت عرض کرد در چنین طول و درازی کس شکنجه داد داد جمعی از خلق خدا بر کار او افکار زاد با خدا گفتند این درد و شقاوت آچیست این چنین آتش زدن بیچاره کردن بهر چیست آن ستن بهر چه گفتند و چنین آزاد زاد این خدا تا کجا بهر همینان کاردا؟ ما که در کام جهان و به پابوسی شاه گرب اصیان آمدی اینسان به درد و قطگاه این چنین گفتند و در فکر و بروز دورگاه سرنوشت و روزی و فردا و سلاخی کشا جمعی از اینان به دور افکنده این فکر فرا لعنت و نفرین به خود دارد چرا خورده به شاه. دیگران پر ترس و از درد و عقوبت از خدا او چنین مسکوت و خاموش شد در این افسارها آریان دیگر کسان در وهم این خالق خدا هر نفر در کار خود برخیشتن در قصه ها این چنین پرتاب و اینسان پرتنش این جایگاه حال یزدان تخت و او در جای خود شد کارگاه این چنین فرموداری پیش آور پیش دار آنس اوسیانگر زمین دار و به پایم هیچ خار با دو دست بست آوردند و اردان را فراز شرب شیطان کفتن او را زمین مهراز باز این چنین با خشم بر روی همینان روی کرد گفت از پایان دنیا و برینان زور کرد هر یکی را گفت با خشم و قذب با دردها تا جهان باشد تو در دردی و تو در دورها یک به یک رانده از این فردوس و از این زورگاه تا جهان باشد پر از درد و بگو مغرورها ریجن از این بین آگد آن سوال از هورها او چرا آنان به نابودی ندارد زورگاه تخم و رفشانی و حاصل شود اشتر فرا او تواند مرگ برگیرا کند بر زورگاه قدرت مطلق همه وح و این ها از برای خیشتن خاند خدا در قصه ها گرنه او این خلق کرده قدرت نابود نیست این جهان بر امر یزدان آنچنان مجبور نیست صد هزاری لاف بود این چنین آن شاه شاه. او به هیچی هر دنیا دارد از آزاد ام کرد و این چنین آنان به دور از دور داد هرچه فرمان دارد از ظلم است و او دستور داد هر یکی از جان این گران در درد بود یک به یک گویم از آنان او خدای مچ بود از هماری دور در جایی مثال گور بود این چنین هر تن از آنان در به در مجبور بود دیدن دنیا و این زشتی پلشتی ها خدای او به ننگ از این چنین ظلم خداوندان ها هر تنی دردی در این دنیا کشیده او بدید او بدید و خیشتن جان و ترش را می دارید. او به هر درد جهان واقف به ظلم آن خدای و مصیبت در دارد از تن رنجور و آن زنی که از سنگ بر جان و دلش آهی کشید او بدید و این چنین ظلم خدا را سر کشید. گر به جان آن زنی بازور اعراضی رسید او خودش را در دل خون و به خونها می هرچه در دنیا به جانداران چنین در ظلم بود او همه درد جهان را یکسره بر جان کشی. این چنین مهراز در قلب جهان در ظلم بود صد هزاران مرد او زنده به جان کفر بود. آن یکی بیدار دل اردان و از او هیچ دان هیچکس هیچ کس از او نگفت و او به دنیا دیر خان خالق ظلم و پلیدی خالق بیمار خان آن خدا اردان به غر آب و در دریافتان او دلش یکسان به فکر است و همه دنیا خیال این خدا دردی دهد دنیا برایش فکر بار او همه دنیای خود را در دل فکر را فرید. از همه صبح و به شبها فکر را او فکر زی دل آن نیستی هستی اینان در پسی این سراغاز و سرانجام همه از چیستی از خدا از خلقت و از شاهی و شاه جهان مبدع و معخض به این دیوانگی های جهان از دل ظلمت بران نوری که در صحرای دید ماورایی در دل دنیای دران اسرای زید زین چنین بودن در این دار مکافات خدا این چنین دیوانگی های خدا خالق شاه از دل ظلمت از آن کشار از بیدار پیر وانگهی دنیای در ظلم خدا قهاردی یک نفر را میکشند و او چرا اینسان پلید بر دل درد و به زبه آدمان فرصت رسید او پر از صد ها سؤال و در دلش ست ها خیال او که جان را می از ظلم یزدان محال هر ار دلان اردان ما در قلب ظلم و در دلاب. او از این ظلم خدا بیدار باشد از تو خواب آن یکی شیطان پرفخر و قرور این دیار از دلو صد ها سخن آمد خدا قهار هار هر یکی از حرف اینان از برای پوچی است این چنین شیطان به تا خدا را خوشی است هر کسی بر دشمن خود میزند انگ و خدا او که قهار از چنین مکر و فریب و حیله ها. حال در دنیا و شیطان را به قهر این سرا او به آتش سوزد و جانش همه خونین را او پر از فخر است و مغرور از جهان زور بود او به تقیانش خدا را این چنین مجبور بود از همه دیدن نسان و این جهان بردگی او به بیداری انسان او رها از بندگی درد او آتش به جان و همچنان در زور بود میکشند و باز بیدار و جهانی کور بود او به تهمت در جهان و نام او ننگین و پست این خدا از دیدن ظلم خودش چون جور بود دیدن این کوچکی ها و به تحقیر جهان او به سوزد بار دیگر آتش آن نور بود سرفراز و بردل تقیان و بر اسیان جان او به آزادی این جام جهان چون نور بود هر یکی از این ستن یک تن همه وصف رها این بگو تغیانگری و این دلاور دور بود هم و غم و گفتن هر شعر و هر دیوان ما از برای دیدن آزاد دنیا جور بود حال خواندی تو از فرجام این آزادگان بهر انسان گوید و خلق و خدا و این جهان او فریدی نسر را از خاک و از ریشه خزان تازه بهر و بازیش اوقات شیرین در زمان از دور، از فجر زمین و آسمان، آن عدم فردوس و پیکار همه شاه جهان، باز تصویری از انسان و عدن در پیشگان، هر یکی از بازی او شاد باشد شادمان. این چنین زرب از خدا و این تکان آن نسان شاد باشد این خدا، از خلق این بد کارگان. شاد در دیدست و از دیدار دیوان پارگان در پی هم با هم و در هم به روی هم همان این چنین بگذشت او دگر تکرار گشت این خدا خسته از این خلق و پی آن کار گشت بر وزیران ام تا بر پای من اینسان سجود از پس مته و به فکر دیگری باید فرود این نخواهم در چنین تکرار من بی حال گشت از چنین خلقی بگو دنیای من بیزار گشت من چنین فرمودم او باشد که هر روزی جدا اسبه کار دگر باشد بگو انسان خدا من چنین آفرده او را کس همه دنیای راه راه خود را راه دیگر او گزیند در فرا این چنین خلق منان روز دیگر دیروز نیست و جهان تازه میفرماید و این زور چیست ناگهان افرا سخن آید که این افسانه را این چنین آغاز باشد هر زمان روز خدا او به غار این جهان باید فرود و در سجود و آن یکی صد در هزار و تومه برگور بود از جهان دیگری دیدن هزاران قصه ها این خدا والی و یکتا از جهان خشنود شاه هر زمان روز دیگر باشد و از این تکرار ها فکر دیگر راه دیگر آمد از شادی خدا این چنین گفت و خدا خوشنود از اینان جور بود یک به یک برپایش این خرقی که او مجبور بود امداد از قلب فردوسی نسان بیرون کنند برچنین چنین کاری همه دنیای را افسون کنن از درخت سیب و از گردش به دور شاخصار از فریب آن خدا هرچه بکارت شاهکار از دروغ و از فریب و از همه افسونگری از بریدن شاخه ها و نشت هر هزیانگری از ضروعی که از دلش این سالیان مغرور بود راستی اینسان خدا مکر و خدای زور بود او و از دت خواهی و داد از دل این کارگاه این چنین شیطان به تهمت رانده انسان بارگاه او پر از خشم از فریق به خود از این است این خدا بیمار و راهش تا ابد ویرانگی است کتاب آفکینش اثر نیماش اصواری بخش چهارم بیداری از عدن دور و بدین سان رانده از این بارگاه منزلش بر خاک و بر دار زمین و شاه را شاه دنیا با فریبش این جهان را فتنه کرد با چنین بیداد انسان را جهان را خطنه کرد شور این دیوانگی های خدا در خون دمید، حال آدم در جهان او این چنین افسانه دید. این شروع زشتی و آن صد جنایت آن پلید، او به تختش جانشین جان همه جانها درید. داغ این ننگ و تجاوز از چکس در نور بود، آن که دید و شاد از دیدن چه کس چون زور بود. جامع ها را او درید و برتنان زخمی که داد این چه آیینی چه خفت از خدای کور بود قتل و درد و مرگ با صدها شکنجه جور بود این خداوند قصاوت این خدای نور بود هر نفر پردر در, در جامع جهان و آریان از چنین دیدن به خود دنیای خود مسرور بود کودک آزاری و بر جان زیفان زاری است او چنین جانها درید و از جهانی دور بود هر یکی را کشته و بر جان دیگر در این خدا دیوانه و بر جام جمع مغرور بود خون به پیش و زبه حیوان و همه از زور بود این خدا زشتی فرید و بر خودش مسرور بود یک به یک هر جان حیوان در پس این ظلم ها آن خدا بیند در این دیدن چنین مغرور بود جنگ و خون و کشتن و فریاد های زور بود این نسان از ظلم یزدان بر جهان مجبور بود جنگ در میدان و این کشتار بی حد در تا این همه اسباب بازی خدای زور بود این زنان یک دم همه هیچ و به ذاتش شور بود او خدا بود و بگفتا ظلم ها مکرور بود کشن و بر جانشان آتش به سلاخی خدا از چنین خود کرده آری این خدا مسرور بود صد هزاری ظلم و از این ظلمها ها مغرور بود او به دنیا مهره دارد این خدای نور بود خالقی که از دیدن این ظلم ها شاد و فرا و او از این خود کرده اینسان بر جهان مسرور بود از برای بازیش اسباب دارد در جهان او دگر بیند و از این دیدن شده شاد از زمان این چنین بگذشت او شاد از چنین خلقی که آه از پس کشتن بگو کشتار دیگر جور بود حال در فردوس و در آن کاخای بسفرا او به لذت بیند از دیوانگی انسان خدا هر زمانی از زمان دیگری انسان جدا و این چنین اسباه به بازیش جهانی دور و وای بس کن این همه دیوانگی ها را خدا این چنین ظلم گران از دست انسان فکر شاه این جهان سرتا تهش ظلم است و بیداد است خدا از جهان زشتیش برخیشتن مسرور شو. این همه کم نیسان بار دگر در فکرها و این خدا بازی دیگر سازد از این دردها او که از بازی چگانش در جهان انسان خوش است بازی دیگر بسازد بر جهانش دل خوش است بحر فردا فکر دارد بحر قلیان فکرها و بحر نظم و بازی انسان بگو این محچگاه او به صدای جهانی تازه و این کارگاه بانسان هم صحبت است و بانسان از شرمگاه بازی بسیار و اینها هر نفر محرز شاه بر دل انسان بگو بذر دروغ و دردگاه نوح را می و او را به خود همراه کرد بازی ظلمش به این دیوانگی ها ساز کرد کشت هر تن را و نسل هر نفس را خار کرد با همه طوفان و سیل و او خودش را شاه کرد از دل الوات و از لوتی و از صد ها او به بازی می انسان و انسان شاه کرد بارش سنگ و برجم هر نفس او شاد تا این جهان را او به بازی خودش بدجاه کرد از سلیمانی و از داوود و از این شاهرا را بر زن دیگر زنا و شوی او را آه کرد از دل خزر و به کشتار نفس او کودکان بی محابا او جهان را خانه بدخواه کرد قاتلان را جاه دارد در سرای و پیش را او به موسا درس کشتار خودش را یاد کرد هر نفس از جان و حیوان و نسان و هر گیاه او به کشتار جهان این نغمه را آغاز کرد. آید از او پور و مریم این جهان ناس کرد. او به شهوت لانه و فرزند خود را دار کرد. صد هزاران سال از پیدایش این ظلم شاه تا ابد جام جهان را او به ظلمش باز کرد. قاتلی آمد میان و او که درس شاه داد این محمد نقمه دیوانگی آغاز کرد. سر بریدن زبه دستان و به پایش کشما، الحق و پور خدا بود و جهان را آز که صد هزاران قصه و صدها ها پیام از آن خدا بازی آمد بازی دیگر جهان آغاز کرد. درس این دیوانگی ها از خداوند نیاز او به شادی خودش جام جهان را باز کرد. این نفر جام و به فرجامش بگو آن دورها ظلم دیگر از پس ظلم دیگر آغاز کرد. این عدن بود و جهنم از شما از کافران نغمه دیوانگی های جهان را ساز کرد. سربریدن مسله کردن آتش و آب مزاب او بر این دیوانگی های خودش هم ناز کرد باز آن بازی و این مهره به دست شاه شاد او سرایید و به نقمش این جهان هم راز کرد بارلاها بس کنین دیوانگی ها را خدا او از این عشق و به درد این جهان خود شاد کرد باید این دیوانگی ها را به پایان آدمان هیچ نتفاند به جز دست خودت همکار که بی ها این زمان از ظلم و از بیدات ها این همه دیوانگی ها از پی شادی خدا او چنین اسباب سازد مهره در بازی شاه نشت زل ظلم است و پایان همه بازی آه این نسان آن دید و بیتاب از طب ها این چنین افسون این دیوانگی ها شاه را جمعی از اینان همه متحوش و بس دیوانه بود آن خدا خالق و او عبد و غلام آماده بود بر و پای شاه میزد او چنین بوسه خدا از چنین خلق نفهمی او به خود مستانه بود آرفان بودند و آن پرواز تجلی از خدا در پی اوهام و در وهم خدا دیوانه بود جمعی از اینان به فرمانش همه سرها به داق اوز خلق ظالمان بر ظلم خود حیرانه بود در دلش مجنون و از خون بر عدن دلدار وار تا نهایت او به مزوری خود جانانه بود با فریب و خلق هر زشتی شده این کار شا. او از انسان و جهان خود چنین مستانه بود در دل این خلق خواب و در دل این ظالمان بار دیگر جست فریادی که او آزاده بود این زمین پرعذاب و این جهان خالقان گوت و فریادی آن باشد و اینسان شادمان آشغانی در جهان رسته بر این بیدادگان این چنین آغاز شور و این چنین بیدارگان از سمام دور از دیر و زمانی داد کرد این جهان آزادگان دید و همه فریاد کرد باز فریاد و به تغیان و به اصیان بیشتر این چنین آغاز شور و نفت آن بیداد کرد هر یکی برنا دلش را در جهان شاه پیر او به آزادی جهان خیش را تیمار کرد. هر یکی فریاد و بیدار او جهان خیش را او به عزم و با جام جهان بیدار کرد. هر نفس را بهر بیداری و گفتن ظلم شاه او خدا انسان و ظلم و تا بیزار کرد. با همه فریاد و با توگیان و با شوری که داشت او همه جام جهان را با خودش بیدار کرد. یک تن و صد تن بگو ست ها هزار و بینه ها. همچنین انسان دلاور جام جم آزاد کرد. این جهان انقدر دارد آن دلاور زادگان جام جم دنیا و انسان را همون بیدار کرد. فصل دیگر آمده که از این شجاعت شادمان از خودش از خلق خود ابراز این بیزار کرد. باید این جمع نسان و دوران آزادگان در هم و با هم به جمع این جهان آزاد کرد. این تلاقی شد و این آزادگی ها در جهان جام جمع را چاره و یزدان و دیوان خواب کرد. آن مهراز و اردان و بگو شیطان بخوان بانسان جمع و به جنگ آن خدایان جور کرد. این طلاقی حاصلش بیداری هر نسل راه باید این ظلم خداوندی چلامی گور کرد. آن شیاطین از دل و غر و فرا در راه بود، باید از هم با هم و جمع نسان را جور کرد، از دل دریا بیامد، آمد این چنین اردان فرا، مهراز و شیطان آمد و ترس خدا، آن خدا با حیله و آن فری با آن ریا، او به فرمانش همه جمع ملایک هورها، دست در دست هم و دیوار و بینا این شرا خواب یک مته دگر درد و برنج و کین خواب با سم درد و شکنجه آتش و رنج کرا این کنین نطفان که فریاد جهان را کور جه با فریب و حیله و درخواب این مغرور ها او از این بگذشت و بیداری خود را نور جرد از دل شهوت بیاورد و خدا را شاد با او به آزادی ز دنیا قلم و هوران دور کرد این چنین از مهراز و به شیطان و ردان او خدا را مکر و حیله ظلمتش را گور کرد حال دیدار هم و جمعی از این آزادگان باید از گفتار هم جمع جهان را جور کرد هر کسی دارد سخنهایی فرا از ظلم شاه از به هم بودن از آن نقشارها صد سد از جهان ظلمت دیوان بد ظلم از خدا از هزاران دردها درمان این بد در از خدا و بندگی ها یا شغارت های شا از پس فریاد آزادی و از دلها رها از پی خاموشی بیمار اینسان برده ها و از دل بیداری و باهم رسیدن بر رها این چنین جمع همه آزادگان را نازگشت، گفتن و سطها شنیدن جنگ جان آغاز کرد، از دل هم گفتن و با هم یکی را ساز گشت. نقمه آزادگی را جام جمع آواز کرد، اتحاد این نسان و آندگر تقیانگران، شور و تقیان و شجاعت همدلان هم راز کرد، باید این با هم به هم بودن شود آغاز آن تا جهان را در دل آزادگی آغاز کرد هر نفر آزاده دارد راه بر كردار شاه این جماعت شور خواهد تا شود آن لشكرا با هم از مردا به این یزدان گذر این قطقا با هم و نشر همه آزادگی در این سرا جمع انسان با همه تقیانگری ها جور گشت نقمه آزادگی جام جهان را نور کرد کتاب آفکینش اثر نیماش احسواری بخش پنجم پیروزی دست در دستان همدیگر بگو همراه کرد دوری این چند هزاران ساله را فرجام کرد همدلی با هم برای یک رهان آزادی است با هم و تغیانگران جام جهان انجام کرد این همه ظلمت کشیدند و جهان بیدار کرد این همه آزادگان ظلم خدا انظار کرد باز این گفتن برای هر که در دنیا است و دیدن و با دیدنش جام جهان بیدار کرد، یک دلان با هم همه فریادی از آزاد کرد، هم قسم با هم همه آزادگی آواز کرد، هر که در دنیا به شور آمد به توگیان او رها، خود جهان و خر را در آشقی پرواز کرد، سالیان سال ظلمت از خدا بیداد کرد. این جهان زشتیان آزادگان بیتاب کرد. دیدن و خاموش نتواند نشستن بر خدا. جنگ و تقیان را به روی آن خدا آغاز کرد. حال دستان دست همدیگر جهان همراه کرد. هم قسم با هم جهان و خیش را آغاز کرد. این همه پیمان به جان است و به آزادی قسم تا جهان پاک از خدا باشد همه امباس کرد. روی این جنگ و به پیروزی همه هم فکر تا نقشه خوش باشد و جام جهان آزاد کرد. بیمهابا نیست در جنگ و بدون هیچ راه. باید از فکر و طریقت این جهان هم راست کرد. قسم با هم به فکر و حال در این خصبگاه شاه بیداد از پی دنیا ناز کرد این چنین کشتن از آب و رنج ها و ها قدرت آزادی آزادگان را بیشتر پرواز کرد قسم با هم جهان را می کند تغییر را با هم هم جام جهان آزاد کرد راه نزدیک این جهان باشد همه کوتاه خدا این جهان را شر یزدان باید اینسان پاک کرد تا جهان آزاد باشد جان و ایمان ها رها ره زندگی آزاد جان ها معتبر این را هم همه یک دل همه با هم همه همراه تا جنگ پایان در قیامت شور در افسانه ها اولش جام را با همتش آزاد کرد بر رهایی و به زیبایی جان آباد کرد حال باید همدل و همراه بود تا هر فرا روز دیگر آید و ظالم خدا در شهر را. آن عدن را بر عدم آورده و این ساز کرد ظلم یز را به دوش این جهان آزاد کرد هم قسم تا روز فردا روزگاران روز شاه نغمه آزادگی را در جهان آواز کرد نقش آمد در میان و این جماعت رزم خواه تا به روز و در قیامت جام جم آزاد کرد این جهان از هم و از شور و از آن دلدارها هر جهان را با شجاعت میتوان آزاد کرد این جهان در حال بگذشت از و حالا دورها، آید آن زشتی و روزی که شود شاهان خدا، لرزه آید بر زمین و مهدی و عیسی خدا، این همه دیوانگی ها شر است شاه. بار دیگر ساز کوک و رقصان مضور ها بازی دیگر تفرج از خدا از ظلم شاه، هفتم امراز و بگو هفتاد حمله از خدا و کشتن آن نطفه در دلباردار از دورگاه از بگو دهتن که او نهتن همه بیمار کرد سر برید و خون به راه و او زمین خونبار کرد هر که در دنیا بگو منزل بگو دارد نشان تومین بازی بیماری خود انباس کرد داد بیداد از دل ظلم خدا آغاز کرد هر نفس را تومه بدخواهی آن ناس کرد. بردلشی که از دل کست دارد او اینسان خبر که بریدن سر به تنها نقمه ای را ساز کرد. آن دیوانگی ها و جهان هم کرد او همه کابوس دنیا را به واقع باز کرد. پشت و دیگری خون بر زمین ها او چکاند او آتش را از خودش اینگونه او سیراب کرد یار او شمشیر در دستو به دنیا آس کرد از غم کشتار این دنیا خدا هم ناس کرد سربتن را او برید و کودکی در شاهرا را بی سر و فریاد آزادی جهان آغاز کرد آتش از آن آسمان ها بر زمین پرواز کرد، سوخت دیندار جهان و آن جهنم ساز کرد، آتشی بر جان و شعل ور همه جانها رها، حال پایان جهان و آن جهان آغاز کرد، یک به یک بی سر بدون پا و خاک سر به جان در برابر این جنون آن خدا هم باز کرد، حکم آنان حکم بیماری آن مجنون خدا بار دیگر ظلم خود را بر جهان آغاز کرد این چنین اسباب تفریح و چنین بازی خدا وعده دیرین خود را فاش او این راس کرد آن جماعت آن قطار و آن چنین سیل از نسان فوج فوجو در دل آتش بدین اغماس کرد باز باید رنج و نشر شکنجه در تا او چنین قطال و قطالان خود را ساز کرد. هر چه گفت و در کتابان و در دران دیوانگی یک به یک سطها بگو بدتر آن را باز کرد. هر که در دنیا به زندان و به حسر و حال این چنین زندان دیوانه برویش باز کرد. آتش و درد و شکنجه وای از این دیوانگی او برای شادیش جام جهان آغاز کرد حال در انهای آن دیوانگی ها آن خدا از چنین بازی خود شادی خود را ساز کرد غرق ظلمت قلب جندار و جهنم حال را باید از شوریدن شوری جهان آزاد کرد در دل دیوانگی ها و جنون و آن خدا نوگل امید بش گفت و دگر پرواز کرد قبل از این دیوانگی ها و به شور آن جهان نغمه فریاد و امروز جهان را ساز کرد حال در قعر جهنم جای دارد آدمان باید این زندان شکستن چاری آغاز کرد هم به مهراز و به اردان و به شیطان جانشان از دل زشتی جهنم این چنین پرواز کرد هر نفر آزاده در حسرست و حالا روحشان بر همه آزادگی های جهان پرواز کرد یک به یک بیدار و با فکر و همه کردارشان عزم جزم آن دلاورها جهان آزاد کرد هر که در زندان و آری این چنین زندار بود دل به دریای رهایی زد چنین انباز کرد باس هم آن شور دیرین و به حالا سخت گوش آن چنین رویای دیرین را به واقع ساز کرد یک به یک با هم برای یک رها آزاد تا آن جهنم را به طول این جهان پرواز گه آنکه دنیایش همه آزادی و آزادگی است بر چنین کوشش همه دنیای را همراست کرد. بر دل هر تن بگو آزاده ها این فکر تا من بمیرم لیک دنیا و جهان آزاد کرد. او که نتواند بنابودی خلق خود شفا آن شفاگر دست خود را از جهان کوتاه کرد این چنین بیدار هر تن هر نفر آزاده تا جام جم را از دلاور بودنش آزاد کرد ها روز آن رهایی و چنین میادگاه هر نفر خود راز قل زنجیر ظلم آزاد کرد آمده بیرون و شیطان با خودش آن صد هزار از دل آن ظلمت آری این چنین بیدار کرد. شر اردان و به شور آن دلاور بی شما رو جهنم را برای خیشتن آزاد کرد. در دل مهر و به محراز و همه زن با زنان نغمه آزادگی های جهان را ساز کرد. این همه آزادگان در پیش از زندان رها حال باید آن همه زندان یزدان زار کرد با هم و یک دل به نابودی همه ظلم خدا و یک دلان با هم به سوی عاشقی پرواز کرد حال باید آن همه زندان و آن دیوارها با دلاور بودن خود این جهان هموار کرد هرچه زندان و هر چه هست دارد آن خدا یک به یک را با دل امید خود آزاد کرد ریشه این ظلمت و در قلب خالق آن خدا برکند از قلب او خوشکانده را احراض کرد آشغان هرچه به قلب این جهان زندان که بود یک به یک را انهدام و هر نفر آزاد کرد وقت بیداری و آزادی رسیده این شرا این جهنم را به نابودی و است ما. ام کرده هر کجا را تو ببینی آن شرا باید آن سر بکنی ای خلق که از این خدا انبیا و اولیا و آن فرشت جن و انس با همان درب رهایی بسته و اینسان شگرف هر نفر آزاده در جنگ و برزم آن خدا سیل این مرتد محارب را ببین اینک خدا جنگ در روح و به شمشیر و به سرب تاجدار نعره میزد ای کهان این چیست این شوخی نار یک به یک در هم پر از زخم و بدن ها درد دار آن خدا فریاد و ای کوچک حقیران دست بار حال مهراز از سوان سیل زنان اشکبار بر چنین روزی همه در جنگ و در آن اقتدار تا ته جان و همه با هم به راه آن هدف این چنین آزادگان در راه این جنگار رفت. اردنان و اردن و اردان و این سیل از این با شکوه و نقشه هایش بکر اینان در چمین، با آن جنگ و دلاور از خود و دنیا گذشت او به راه این رهایی دل و دنیای گشت. شر شیطان و به شورش های این تغیانگران با دلاور با شجاعت بر خدا بر جان خان این همه بیباک در راه غرور و افتخار جنگ بی تکرار در قلب خدا و اقتدار این بگو جنگ است و جنگ در قیامت بر خدا این همه آزادگی و شور و تغیان بر تو شاه. این چنین فرمود ای کوته نشینان ای خزان ای که حیف نان و انسان و ملائک هوریان بر شما گفتم بکش این قائله را خط کن حیف این خلقی که من کردم جهان را حضم کن این چنین فرمود و سطها بدتر از انسان فرود هم به تحقیر و به آتش ناله های بس نمود ای شما کوته حقارت بندگان و بردگان قائل ختم و وگرنه سیلتان برباد خان یک به یک از هو و از غلم و فرشت مالکان از چنین خالق به پستی شد پر از صد فقان آمده بیرون از این دیوانگی ها دور بود او به آزادی خود آن جهان نور بود سیل اینان از دل یزدان و از آن زور بود حال بی‌پروا بگو بر ضد یزدان دور بود بر دل آزادگان و جاه فریاد رها لانه کرد و در پی تبعید خود از نور بود. قدرت آزادگان از این فزون و جور بود. حال دیگر روز نابودی خدای زور بود. یک دل و آشق همه در راه آزادی رها جنگ و فریاد و جهان را تابه این نور بود. حال دیگر روز پیروزی و روز این رها آن خدا در انتها و راه او در زور بو کتاب آفکینش اثر نیما شاهسواری بخش ششم آزادی این چنین پیروز و بی‌پروا به دنیا عاشقان عشق آنان کرده این جام جمع از آزادگان هر تنی از آن خدایان خود به خود تسلیم کرد این چنین سیلی از آنان در پی تحریم کرد آنکه که بی از خدا دم میزد و مد حسنا اون و خستین را بر رها تسلیم کرد هر که در آن وادی و در آن سرای جاه داشت از خدا نفرت به جوید و چنین تعظیم کرد این خدایان در پی دونماندن و دونمایگی کنان آزادگان او را چنان تکریم کرد گیشتن از خواب و بیدار و از آن یاران خدا دربرش نن مانده و او را به خود تسلیم کرد این خدا بار دیگر تنها و تنهاتر تر خدا بار دیگر از ازل روز خودش تنظیم کرد در پی هیچ و از آن پوچی و هیچی این خدا زخم خود را با دل پوچی خود ترسیم کرد حال هیچی در کنارش نیست این تنهای هیچ او دیگر قدرت ندارد قدرتش تسلیم کرد هرچه غیر و ممکن و دور از خیال و باور است بر رهایی و به این آزادگی تعظیم کرد. شور و تقیان و به اسیان و همه تن آشغان از دلاور بودن خود این چنین تکریم کرد. آن خدا در حسر و حالا آن خدا تنها که شاه بر کسی نتفان و قدرت راز خود تسلیم کرد. روز قانون است و روز خکماری بر خدا بیشمارانی که از ظلم خدا تکبیر کرد. آمدند و حال باید پاسخی دهد خدا او که از ظلم خودش آگه از آن تجلیل کرد. روز عدل است و ادالت روز راهی در رها. آن همه آزادگی بر قوم ما تدبیر کرد. باید این ظلم و جنایت پاک باشد دورها آن خدا بار دگر بر ما جهان تهدید کرد آمدند و یک به یک از دور آری قصه ها در برابر شاه بیمار و به حسراری خدا این خدا تا آب سخن را دارد از ها، نال ها و گریه ها آن بی شماران زجه ها آن همه روزی که از دیدار درد ما شما او به ما خندید و از ظلم خودش تکریم که ما به قلب درد و در رنج و درون قصه ها او از این شاد و به تفریح خودش تأثیر که آن زنی زیر تجاوز ناله هایی سر این یزدان بیمار از دل تقدیر که آن نفس را زیر شمشیر و گلوها می دارید. آن خدا دید و شکستن تخمه را تدبیر که کودکی را در پی آن هیچ او سر میبرید خود به خضر و خاضران این حکم را تعلیم کرد. بر زریهش سر دریدند هزاران اسطوران او از این خونریزی جام جهان تقدیر که هر نفس را از دل حیوان بریدند و نسان از خدا اشرف شدن را این چنین تجلیل که و مصیبت از هزاران درد و از این ظلم ها آن خدا شاد است و در بازی خود تزویر کرد هر که فریادی برآورد و به آزادی رسید حکم آن تیغ از و خون و آن خدا تلمیه کرد هر نفس را میبریدند و نفس می رو بود این خدا دیوانه بود و بر جهان تأثیر کرد صد هزاری ظالمان را او به تختی می نشاند از خدایی همینان شاهیش تحکیم که آنقدر گفتند و اینها در برابر هیچ بود باز هم او می شنید و برخودش تجلیل که زجیان مادری تفلش بدون سر به آزو شنید و بار دیگر کشتنش تدبیر که این خدا دیوانه بود و هیچ در دل او نداشتر نفس را کشتن و قدرت به خود تأثیر کرد ها روز حکمان روز عدالت از رها باید اینسان بر جهان خیشتن تدبیر کرد بیشماری آمدند و گفت از صد ظلم ها آن خدا بشنید و دنیا هم شنید و حیله کرد در جهان زشت و بیجان جان خدای شرم ها باید آن حکمی که دنیا و جهان را خیره کرد حکامت از دل رأی همه جاندارها باید آن را کس قراعت پس مقدر بر خدا آمده در پیش حیوانی و آن را عرض کرد جمع جانداران بر این رأی نهایی عرض کرد ای خدا ای خالق بدکین مغرور شاه ای که با ظلمت جهان را بردی در قهقره جمع جانداران به تو این نامه را آن ارز کرد این به حکم عاشقان باشد جهان را نرم کرد زین پس آن قدرت ز تو را برکنیم و شاد باش دیگر از دست تو دنیای همه آزاد با انهدام قدرتت این بود آن اول زرعی این ستاندن قدرتت جام جهان را سهل کرد از خدایی از همه شاهی خود معذول باد تو دگر همچون منی همچون جهانی دور باش تو به ما یکسان و ما به جان تو یکسان شویم هر دو از یک ریشه و شاه و گدا یکسان شویم زینپس پساری تو همان جانی و همچون جان ما هر دو از یک سو و در جام جهان مهمان شویم قدرتت در دست جمع و جان این جاندارها ما به شور هم جهان آزاد و آن آسان شوی. تو نه آن شاهی و نه خالق نه آن یکتا خدا در چنین افسانه آزادگی یکسان شوی. این چنین گفتار آنان این چنین حکمی که آن درس آزادی و بر آزادگی مهمان شوی. زین پساری آن خدا زندار و آزاد و رها همچنان جان دگر بر جان دنیا جان شوی. این سخنها را شنید و آن خدا قرید گفت من جهانم جام و دنیا و به ازنم جان شوید مرد بر این سیل جانداران نافرمان خان زین حقیران تومه درد و بران حیران شوید جمعی آمد آن خدا را برد در آن سودیار تو برو بازی بکن شاید به دل آسان شوی رفته تنها در دل تاریخ او تنهای ماند تا به کار خود جهان خیشتن حیران شوی فکر آمد بر سرش آن سالیان بست راست که از به شاهی خودش اوج حماقت آن شوی آنکه بسیار از دلش ظلم گران بر جای داد. حال هیچی از شکنجه بر دل و جانش ندا ذره ای بر فکر این بازا بگیری بازی است کشتن و درد و شکنجه بر دل و جان یاغی است ذره ای فکری بر این دنیا و پوچی خود خدا از خودش جام جهانش از همه او آسی است آمده در پیش ازرا و خدا نالان بگفت بس کجا بودی در آن بد روزگاران زار خو آنچنان ازرا نوازش می کند او را که یار هیچ در کام جهان ناشد که او آرام خو حال دیگر روز آزادی بگو آبادی است باید این آزادگان را در جهان باقی است. س این سان دل این سالیان بست راز رنج و درد و زحچ او دیده و حالا فراس حال دیگر روز نشد آن همه آزادی است جام دنیا از برای هر که در آن باقی است هر نفس یکسان و هر کس دارد آن جان گران او به مانند دگر جان جهان را راهامی است هر که بر باور به مسلک های خود او بی امان بر همه ایمان خود او در جهانش باقی است هیچ تحمیلی و زوری نیست در این کاروان او به دنیای خودش باور خودش او راضی است هیچ ظلمی در دل این جام و دیگر زور نیست آن شکنجه در خزان و این جهان را شاکی است هیچکس قدرت ندارد هیچکس کس والانشان این جهان را گودگر مرگ همه شه شایی است هیچ کس والاتر از آن یارگو این کار نیست شاه و خالق خان و یک مرگ اینسان شاهی است معتبرتر از نفس در جام دنیا یار نیست این جهان مرگ همه خان و خدا و شاهی است همدلان در یک ره و همراهان در یک سرا یک به یک یکسان و این تاج جهانی باقی است این جهان را آن غذا دارد که قانونی در آن کل و بر اجماع این جام جهان را کافی است این جهان آزاد و آزادی شود مهمان بر آن این همه دنیای ما را در جهان یاغی است حال دیگر این غذا و معنای هر عدل است و داد بردگر نفی همه آزار و این را آمی است هرچه میخواهی بکن بر کار خود مشغول تا جان دیگر نفی آزار و جهان آزادی است حال دیگر روز پرواز است و این مغرورها از جهانی که از دل عزم خودش آن باقی است این چنین فرجام ما در قلب تاریکی جهان قلب ما از نور این آزادگی ها راضی است باید از این راه و از این شاه راه و دور راه پاسداری باید از آزادی و این رزمگاه ما آزاد و این جام جهان آزاد شد این جهان از عزم ما قلب رهایی شاد شد باید این را تا ابد حرمت و از این تکرین تا جام دنیا را بر این آزادگی ها باقیه هر که در دنیا بود او حال آزاد اصرا هر چه حیوان و نسان انباد او شاه است ما جان او خوش در زهر باور زهر می آدگاه هر که در دنیای خود آزاد و آزاد است شاه حال تعبیر همه رویای ما دور است شاد این جهان معنای رویای من و ما است ما هیچ کس در قلب این دنیا دگر مجبور نیست آن خدا قدرت نسانگو و دگر آن زور نیست اردلان و ارمغان و هرچه مهران از شاد شرب شیطان و به تقیان جملگی جام از شاد ما رها از بند هر بیداد و از این دام ها ما جهان دیگری سازیم و این راه هست را بار دیگر نغمه و فریاد تا آن دورها، این جهان را ما رها از دست آن بدزور ها تومه مرگ است آن همه ظلمت همه ظلم خدا این رها پیش است و این راه رهایی در فرا این همه همرزم و همپیمان من در پیش دار را ما دگرگون از دل شبگیر ها این جهان را ما بدل از هیچ در این شاه را جم آزاد باشد از من و از ما شما